ای برندان مکن ای زاهد پاکیز سرشت که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت من اگر نیکم و گربت تو برو خود را باش هر کسی آن درود آقبت کار که کشت همه کس طالب یارند چه حشار و چه مزد همه جا خانه عشق است چه مسجد چه کنشت سر تسلیم من و خشت در میکد ها مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خشت سر تسلیم من و خشت در میکد ها مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خشت نا امیدم مکن از سابقه لطف ازل تو پس پرده چه دانی که که خوبست و که زشت نمن از پرده ی به در افتادم و بس پدرم نیز بهشت عبد از دست بهشت حافظا روز اجل گر به کفاری جامی یک سر از کوی خرابات برندت به بهشت